چه جانی کندن و چه عرقی ریختند تا توانستن را انبار کنند. اما به زحمتش میارزید چه نتیجه حتی بیش از انتظارشان موفقیت آمیز بود. کارگاهی دشوار میشد زیرا افزار و وسایل کار برای دست بشر ساخته شده بود نه برای حیوان و اینکه هیچ حیوانی نمی توانست با افزاری که لازم به ایستادن روی دو پای عقب داشت کار کند خودشکال بزرگی بود اما خوکهای های برای رفع هر مشکلی چاره ای می انشیدند. از خاک با مزرعه وجب به وجب آشنایی داشتند در حقیقت کار چمنزنی و شنکشی را به مراتب بهتر از جونز و مستخدمینش بلد بودند خوکا خودشان کار نمیکردند، فقط بر کار سایرین نظارت داشتند طبیعی بود که به علت ترفق علمی رهبر و پیشوا باشند باکسر و کلوبر خود را به آلات چمن زنی و شنکشی می پسند. البته این روزها دیگر حاجتی به دهن و افسار نبود و دور و دور مزرعه قدمهای های سنگین و استوار بر در حالی که خوکی به دنبال آنان میرفت و بر حسب اختزا رفیقه یا رفیق خوش همه حیوانات حتی زعیفترین آنها در کار برگرداندان یونجه و جماوریان سهیم بودند. حتی اردک ها و مرخ ها تمام روز زیر آفتاب زحمت کشیدند و خورده های یونجه را با منقار جماوری کردند. بالاخره کار خرمن برداری روز زودتر از مدتی که نوان جنس و کسانش صرف می‌کردند به اتمام رسید. به علاوه بیشترین محصولی بود که مزرعه تا آن زمان به خود دیده بود، هیچ تلف نشده بود، مرقه و ارتکا با چشمان تیز آخرین ساقه کوچک را هم جمع کرده بودند و در سراسر مزرعه هیچ حیوانی نبود که به اندازه پرکاهی از محصول دو زیده باشد. در سراسر تابستان کار مزرعه چون ساعت منظم پیش میرفت. حیوانات چنان خوشحال بودند که هرگز تصورش را هم نکرده بودند هر لقمه خوراک به آنان لذتی مخصوص می‌داد چه این قوطی بود که تماما مال آنها بود و به دست خود برای خود تهیه کرده بودند نه غذایی که به دست ارباب خسیز بندی شده باشد با رفتن انسان‌های تفیلی و بی‌ارزش غذای بیشتر داشتند و با اینکه در کار مجرب نبودند فراغت بیشتری هم داشتند البته با اشکالات فراوانی هم مواجه بودند مثلا در آخر سال پس از جمعآوری قله ناگزیر بودند خوشها را به سبق قدیم لگت کنند و کاه را با فود کردن جدا سازند چون مزرعه ماشین خرمندکوپی نداشت اما خوکان با درایت و باکسر با زور بازو همیشه کار را پیش می بودن. باکسر مورد اعجاب و تحسین همه بود حتی زمان جنز هم پرکار بود ولی حالا از همیشه به نظر می آمد. روزهایی پیش می‌آمد که فشار همهی کار منزعه روی های پرقوت او میافتاد از صبح تا شب هر جا که کار دوشواری بود همیشه او بود که میراند و می‌کشید با جوج خروز قرار گذاشته بود که او را صبح نیم ساعت قبل از سایرین بیدار کند و دافت قبل از آنکه کار روزانه شروع شود هر جا که کار فوق‌العاده‌ای بود به کار می‌پرداخت هر وقت مشکل و مسئله‌ای طرح شد جوابش این بود که من بیشتر کار خواهم کرد و این جواب را شعار خود کرده بود هر کس به تناسب به خود کار میکرد مثلا مرغها و اردکا در موقع خرم در حدود 50 پیلو قله پخش و فلا شده را جمع‌آوری کرده بودند نه کسی دزدی میکرد و نه کسی از سهم جیره شکایتی داشت از نزاع و گاز گرفتن و حسادت که از عادات زندگی ایام گذشته بود تقریبا اثری نبود هیچ یا تقریبا هیچیک شانه از زیر بار کار خالی نمیگرد البته مالی صبحها به برخاستن از خواب تنبل بود و کار را قبل از وقت و به اینکه ریگی در سم دارد تعطیل میکرد و رفتار گربه نسبتا غریب بود از همان بد به امر همه متوجه شدند که موقع کار گربه غیب می شود و ساعت ها ناپدید است و فقط وقت غذا یا بعد از کار مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده دوباره سرکلاش پیدا می شود اما همیشه چنان بهانه عالی داشت و چنان با مهر و محبت قهر می کرد که امکان نداشت در خصوص نیتش تردید شود بنجامین علاقم پیر بعد از انقلاب کوچکترین تغییری نکرد کارش را با همون سسختی و کندی دوران جونز انجام میداد. نه از زیر بار کار شانه خالی میکرد و نه کاری داوطلبانه انجام میداد. هیچ کار در باری انقلاب و نتایج آن اظهار نظر نمیکرد. و وقتی از اون میپرسیدند مگر خوشبالتر از زمان جونز نیست فقط میگفت خرها عمر دراز دارند هیچ کدام شما تا حال آخر مرده ندیدید و دیگران ناچار خود را به همین جواب معماآمیز و آمیز غانه کار نبود. سلطان ساعتی دیرتر از معمول سرخ می شد و پس از صرف آن تشریفاتی بدون وقفه هر هفته اجرا شد اول مراسم افراشتن پرچم بود. سنوال در یراقخانه رومیزی کهنه سبزی که مال خانم جونز بود پیدا کرده بود و رویش سومی و شاخی با رنگ سفید نقاشی کرده بود و این پرچم روزهای یکشنبه در حیات افراشته می‌شد. سنوال می گفت رنگ پرچم سبز است برای اینکه نشانه مزارع سبز انگلستان باشد. و سو و شاه علامت جمهوری آینده حیوانات است که بعد از قلققم انسان ها برپا خواهد شد. پس از برفراهشتن پرچم همه حیوانات در طویله برای جلسی عمومی که بان میتینگ میگفتن جمع میشدند. در آن مجمع کار هفته آینده تحم شد و تصمیمات مورد بحث قرار میگرفت همیشه خوکات تصمیم میگردند سایر حیوانات هرگز نمی تصمیم خاز کنند ولی رأی آدن را یاد گرفتن. سنوبال و لاپل اون در مباحثه از همه فعالتر بودند ولی به این معنی توجه شده بود که این دو هیچگاه با هم توافق ندارند. پیشنهاد از طرف هر کدام که بود واضح و روشن بود که دیگری مخالفه است. حتی در موضوعاتی که در اساس آن جایی هیچ هیچگونه مخالفتی نبود مثل تخصیص دادن قطع زمین کوچکی پشت باغ میوه برای سکونت حیوانات بازنشسته بین آن دو بحث طولانی در میگرفت. میتینگ همیشه با خواندن سرود حیوانات انگلیس ختم میشد و بعد از ظهر مخصوص تفریح بود. خونکا یراق خانه را مرکز فرماندهی کرده بودند. شبها در آنجا روی کتاب‌هایی که از خانه آورده بودند، آهنگری، نجاری و سایر صنایع ضروری را یاد می‌گرفتند. سنوبال سرگم دایر کردن تشکیلاتی بود که آنها را کمیته‌های حیوانی می‌نامید. در این امر پشتکار کار خستگی ناپذیری داشت. برای مرقها کمیته تولید تخم مرغ برای گاوان اتحادیه دونتیزان کمیته تجدید نظر در تعلیمات رفقای غیر اهلی که هدف آن رام کردن حیواناتی از قبیل موش و بود برای گوسفندان جنبش پشم سفید تر و کمیته های دیگر تشکیل داده بود به علاوه بر کلاس های مقدماتی به منظور تعلیم خواندن و نوشتن به طور کلی این ترخا با شکست مواجه شد مثلا کمیته تجدید نظر در تعلیمات رفقای غیر اهلی تقریبا به منحل شد چه وحوش از راخ و رسم اولیه خود عدول نمی کردن و وقتی با آنها سخاوتمندانه رفتار می شد از وضع سو استفاده میکردند گربه عضو این کمیته شد و چند روزی خیلی فعال بود یک روز دوستان دیدن که بر بام نشسته و با گنجشک های دور از دستش حرف میزند می حالا دیگر همه حیوانات با هم دوستند و هر که بخواهد میتواند پرواز کند روی پنجه من بشیند ولی گنجش کا فاصلهشان را با او حفظ می کرد کلاس های خاندن نوشتن با موفقیت زیادی همراه بود در پاییز تقریبا همه حیوانات مزرعه تا حدی باسباد شده بودند. خوک و نوشتن را به کمال گرفته بودند سک نسبتا خوب میخاندن ولی سوای هفت فرمان علاقه به خواندن هیچ چیز نداشتند موریل بز سفید از سکه بهتر میخواند و گاه که پاره روزنامه ای را که در زباله پیدا میکرد برای سایره میخواند بنجامین به خوبی خوکا می‌خوان ولی از آن استفاده نمیکرد میگفت تا آنجای که خبر دارد چیزی نیست که بخواندنش بیرزد کلوبر تمام حروف الف بارو میدانست ولی از ساختن کلمات آجز بود باکسر از حرف ت جلوتن نرفت باسم بزرگش روی خاک الف ب پ ه قرائت میکرد و بعد با گوش خوابیده به حروف خیره میشد گاهی کاغلش را تکان میداد و با تمام نیروز سعی میکرد حروف بعدی را به خاطر آورد ولی توفیق نمیاد چند بار ج که ه خ را هم یاد گرفت ولی هر بار که آنها را به یاد داشت متوجه میشد که الف و ب و پ و ت را فراموش کرده است. بالاخره مصمم شد که به همان چهار حرف اول قناعت کند و مرتب هر روز یکی دو بار آن‌ها را می‌نوشت تا ذهنش آماده باشد. مالی جز چار حرف اسم خودش از فرا گرفتن سایر حروف سر زد. این حروف را با ساغه نازک درخت درخ و با یکی دو گل آن را تزین کرد و به به دورش می گشت. سایر حیوانات مزرعه از حرف الف جلوتر نرفت. و همچنین کاشف به عمل آمد که حیوانات کدن مانند گوسفندان، مرغان و اردکا قادر به ازبر کردن هفت نیستند سناوال پس از مدتی فکر اعلام داشت که هفت را میتواند تواند به صورت چار پا خوب، دو پا بد خلاص شود. و گفت این شعار شامل اساس حیوانگری است هر آن را کاملا دریابت از شر نفوز انسان مسون است پرندگان ابتدا اعتراض کردند چون خود آنها هم ظاهرا دو پا داشتند ولی سلوبال به آنان ثابت کرد که چنین نیست گفت رفقا بال پرنده عضوی است برای حرکت و نه برای عکس برکت بنابراین به مسابه پاس دست علامت مشخصی انسان است و با آن مرتکب تمام اعمال زشتش می شود پرندگان چیزی از کلامات تعبیر سنوبال دستگیرشان نشد ولی توضیحاتش را پذیرفتند و همه آماده از برکدن شعار جدید شدند چارپا خوب، دو پا بد بر دیوار غلعه و بالای هفت فرمان و با خروفی تر نمیشته شد وقتی آن را فرا گرفتند گزفندان چنان به آن دربستگی پیدا کردند که هر وقت در مزرعه استراحت میکردند چارپا خوب، دو پا بد را ساعتها بعوه میکردند بی آنکه خسته شوند ناپل اون به کومیته های سنوبال توجهی نداشت و می تربیت جوانان مقدم بر هر کاری است که برای بزرگسالان سالان می کمی پس از برداشتگی اونجه جسی و بلبل روی هم نه طوله قوی و سالم زایدند ناپل اون ها را به مجردی که از شیر گرفته شدن از مادرها چان گرفت و گفت شخصا عهدهدار تعلیم و تربیتشان می شود. آنها را آنها را به بالاخونه که فقط به وسیله نردبان به یراخانه راه داشت برد و دا آنها را در چنان انزوایی نگه داشت که سایرین به زودی وجودشان را فراموش کردند. معمای شیر به زودی حل شد. هر روز با نواله خوکام مخلوط میشد. زود زودهست داشت می‌رسید و زمین باغ میوه از سیبهای بادزده پوشیده شده بود. حیوانات تصور کرده بودند که طبعا سیبها بین همه و به تصاوی تقسیم می‌شود. فرید دستور صادر شد که ها جمعآوری شود و برای خوراک خوک‌ها به یراق خانه فرستاده شود. بعد از صدور دستور چند تا از حیوانات زمزمه‌ای سر دادند ولی نتیجه نداشت چون همه خوک‌ها حتی سنوبال و ناپل اون در این امر توافق نظر کامل داشتند و سکویلر مأمور شد که توضیحات لازم را به سایرین بدهد. به صدای رسا گفت امیدوارم رفقا تصور نکرده باشند که ما خوک‌ها این عمل را از روی خود پسندی و یا به عنوان امتیاز می‌کنیم. بسیاری از ما خوکا از شیر و سیب خوشمان نمیآید و من به شخصی از آنها بدم میآید تنها هدف از خلن آنها حفظ سلامتی است شیر و سیب از طریق علمی به ثبوت رسید رفقا شامل موادی است که برای حفظ سلامتی خوکا کاملا ضروری است ما خوکا من فکری منفکریست تمام کار تشکیلات مزرعه بسته به ماست ما شب و روز ما به بهبود وضع همه هستیم صرفا به خاطر شماست که ما شیر می نوشیم و سیب را میخوریم. هیچ میدانید که اگر ما به وظایف آن عمل نکنیم چه خواهد شد؟ جونز برمیگردد بله، جونز برمیگردد. و در حالی که جست و میکرد که دوراویجون ما با لحنی تقریبا ملتمسانه فریاد کشید. رفقا، به طور حد کسی بین شما نیست که طالب مراجعت جونز باشد اگر تنها یک موضوع بود که هیچ حیوانی در آن تردید نداشت عدم تمایل به بازگشت جونز بود حتی که مطلب به این شکل عرضه شد؟ دیگر جای حرفی نبود اهمیت حفظ سلامتی خوک هم که روشن و واضح بود بنابراین بدون چون و شراب موافقت شد که شیر و سیب های باد زده همچنین محصول اصلی سیب پس از رسیدن منحصراً مال خوکا باشد